تفخیه 732 شاه ساله خود را سرزنش می کرد که او سبب گردیده به جای عروسی شاه با شاه گوهر شاه ناپدید شود. بنابراین نمیدانست به ملکه گلنار چه پاسخی دهد و به خاطر یافتن خوهرزادی خود مجبور شد اداره کشور سیش را به دست ملکه مادر بسپارد و به کشور سمندیل برود و در آنجا شاه را در اختیار خود داشته باشد. و سپاهیان او در جستجوی بج به کار خود ادامه دهند همان روزی که شاه صالح به سرزمین سمندل سفر کرد ملکه گلنار هم به دربار ملکه مادر وارد شد تا از فرزندش خبری به دست آورد بعد از یک دو روز که خبری به دست نیامد ملک گلنار شدیدا نگران فرزندش گردید به خصوص که افسران همراه شاهبج بعد از جستجوی کامل دست خالی مراجعت کردند و گزارش دادند که اسب شاهبد را در بیابان یافتند، ولی از خود او نشانی به دست نیاوردند. ملکه گلنار از آنها خواست تا یک بار دیگر با دقت بسیار جست جوی شاه بپردازند شاید او را در گوشه بیابند ملکه مادر که دختر خود ملکه گلنار را دید به او گفت از دیدار از خوشوقتم ولی میدانم که برای دیدن من نیامده ای و به خاطر فرزندت شاه اینجا آمده ای. من که نوه عزیزم را دیدم اینجا آمده خوشحال شدم ولی نمیدانستم که بدون اجازه و رضایت تو به کشور من آمده و خود او هم چیزی در این زمینه به من نگفت و شاخساله با یک دنیا امیدواری و شادی برای خواستگاری نوه عزیزم نزد شاه کشور سمنند رفت که ملاقات او منتهی به نبرد بین آن دو گردید و در این میان شاه برج ناپدید شد و متاسفانه هنوز هم خبری از او نداریم ملک گلنار امیدی به بازیافتن فرزند خود نداشت و در اندوه امیده به سر می برد و تمام گناه را متوجه برادر خود شاه صالح می ملکه ملک مادر او را به صبر و امیدواری تشویق می کرد و می شاه صالح روی علاقه بسیار به شاه بد و اینکه که می ترسید او از عشق به شاهصاد گوهر تلف شود به دیدار شاه سمندل و خاستگاری از دختر او رفت و تا در حال حاضر نباید امید خدا به در باز یافتن شاه پسر عزیزت و نوه مورد علاقه من از دست بدهی تو باید در نبودن شاه در کشور خودت باشی حضور تو در آنجا ضروری است و باید این خبر را منتشر کنی که شاه برای دیدار ملکه مادر به کشور او سفر کرده است ملک گلنار سخنان مادر را پذیرفت و به پایتخت کشور خود بازگشت و فورا این را به دنبال افسرانی که خودش به جستجوی شاه بعد فرستاده بود اعزام داشت که بگویند ملکه از محل شاهبدر آگاه شده و جستجو ماردی ندارد و شما به زودی شاهبجر را خواهید دید و به همین ترتیب هم در سراسر سر کشور این خبر منتشر گردید و ملکه گلنار به همراهی نخست وزیر و انجمن زنان سلطنتی به حکومت و کشورداری مشغول شد درست مثل هنگامی که خود شاه شخصا در پایتخت به سر می برد. هنگامی که شاهبردر به صورت پرندهای در آن نقطه خوشاب و هوا رها مات و مبهوط به اطراف خود نگاه میکرد و نمیدانست در کجای دنیا قرار گرفته و کشور ایران و پایتخت او تا اینجا چقدر فاصله دارد اگر فاصله تا کشورش و همچنین نیروی مقاومت بالهای خود را میدانست و مسیر سفر را هم بلد بود آن وقت به سوی مقصد پرواز میکرد ولی افسوس که هیچ کدام از آنها را نمیدانست و به وقت بعد خود نفرین فرستاد و ناچار بود در همان نقطه باقی بماند و مانند یک پرنده تغذیه کند و به زندگی ادامه دهد. چند روز بعد یک مرد روستایی که از نقطه عبور می کرد این پرنده را دید و بسیار حیرت کرد و تصمیم گرفت او را به چنگ آورد. او که صياد با تجربه ای بود با تدبیر خود سرانجام پرنده را گرفت و با خود گفت ماننده چه این پرنده ای را تو کنون هیچ کس نریده است و با سایر پرندگان بسیار تفاوت دارد آن را در قفصی جای داد و با خود به شهر بود و همینکه وارد بازار شد شخصی از او پرسید این پرنده را به چه قیمتی می فروشید مرد روستایی به جای آنکه پاسخ او را دهد از او پرسید تو این پرنده را برای چه می آن شخص پاسخ داد آن را کباب کرده می خورم مرد روستایی گفت تو با این تصمیم هم که این پرنده را ارزان بخری تصور خواهی کرد گران خریده ای من تصمیم دیگری دارم این پرنده ی زیبا و بینظیر را به دربار پادشاه میبرم و آن را به سلطان پیشکش میکنم مسلما سلطان بیشتر از تو به ارزش این پرنده آگاهی دارد بیدرنگ مرد روستایی بازار را ترک کرد و مستقیما به مقصد دربار سلطان پا شد و به قصر سلطان رسید اتفاقا سلطان از بالای پنجره در محلی ایستاده بود که میتوانست بیرون را تماشا کند و پرنده سفید زیبا را در دست مرد روستایی دید و محض زیبایی آن گردید زیرتا کنون پرنده که منقار سرخ و بالهای سفید داشته باشد ندیده بود سلطان بلافاصله رئیس نگهبانان داخلی قصر را فراخواند و, فرا و دستور داد هر زودتر مرد روستایی را به حضورش بیاورند مرد روستایی را به حضور سلطان آوردند و از پرسیدند پرنده را به چه قیمتی حاضر به فروش است. مرد روستایی با فروتنی پاسخ داد. این پرنده را از دور برای پیشکش کردن به حضور سلطان آورده است و از ایشان آن را بپذیرند. آنگاه یکی از نگهبانان پرنده را به حضور سلطان برد و سلطان از دیدن آن پرنده زیبا و بیمانند بسیار خوشنود شد. و ده ی طلا به مرد روستایی دادند و مرد روستایی بسیار شادمان به سوی روستای خود ره سپار شد سلطان پرنده را در قفص بزرگ طلایی جا داد روز بعد سلطان آن را احضار کرد و درباره دانه خوردن پرنده پرسش کرد نگهبان پاسخ داد از دیروز تا کنون حتی یک بار هم به سوی انباشته از دانه ها نرفته سلطان فرمان داد چندین تکه گوشت از انواع مختلف در نزد پرنده بگذارند در همین لحظه پرنده را سلطان روی انگشت خود نشانده بود وقتی سفره را گستردند و غذاهای رنگارنگ را برای شام در آن گذاشتند پرنده پر کشید و روی سفره نشست و نان و خورش خورد و با سرعت از هر کدام برمیداشت سلطان هیرت کرد و ملکه را برای تماشا صدا زد ملکه فوراً به اتاق سلطان آمد و چهره‌ای خود با نقاب پوشاند و به سلطان گفت این پرنده مرد جوانی است که با نیروی جادو او را به شکل پرنده درآورده‌اند سلطان ابتدا تصور می کرد ملکه با او مزاه می میکند ولی ملکه پاسخ داد مزاه نمی کند و ادامه داد که او علم سحر و افسون میداند سپس ملکه رو به سلطان کرد و گفت این پرنده پادشاه سرزمین ایران است و نام او شاه بدر است که فرزند ملکه گلنار شاهزاده خانم بزرگترین خانواده سلطنتی دریاها و خواهرزادهٔ شاه ساله پادشاه همان خانواده است و شاهزاده گوهر دختر پادشاه کشور سمندل او را به شکل پرنده درآورده است سلطان علت این بد را که دربارهٔ شاه بج شده است جویا شد ملکه هم شرح ماجرا را بیان کرد و گفت شاهزاده گوهر به منظور انتقام انتقامجویی از شاه او را به این شکل درآورده است زیرا دایی شاخبت کشور سمندل را زیر فرمان خود در آورده است سلطان که می دانست او سر آمده، همیه جا جادوگران است و از آن چه در اطراف بگذرت آگاهی پیدا می کند و به همین جهت هر اقدامی را که هر کدام از شاهان اطراف بخواهند علیه او انجام دهند ملکه به موقع را آگاه می سازد و آن را خونسا می کند از ملکه درخواست کرد شاخبت را به حالت طبیعی خود برگرداند ملکه با خوشنودی درخواست سلطان را پذیرفت و به سلطان گفت پرنده را به اتاق مجاور ببرید و ظرفی پر از آب در آن اتاق بگذارید پرنده که متوجه سخنان ملکه بود فورا به اتاق مجاور رفت و سلطان هم بیدرنگ دنبال او رفت آنگاه ملکه کلماتی ادا کرد که سلطان مفهوم آن را نمیفهمید و سپس بر آب دمید و آب به جوش آمد آنگاه چند قطر روی پرنده ریخت و گفت از آفریدگار زمین و جهان هستی می‌خواهم که این پرنده به حالت اول برگردد. هنوز سخنان ملکه به پایان نیامده بود که سلطان به جای پرنده شاهساری یک جوان و برازنده ای را در برابر خود نمایاند. شاه بعد فوراً در برابر سلطان زانو زد و از خداوند بزرگ سپاسگزاری کرد. آنگاه دست سلطان را برای بوسیدن به دست گرفت. سلطان هم او را در آغوش کشید. و خوشنودی خود را از دیدن او ابراز کرد در این وقت ملکه به تالار رفته بود سلطان ماجرای ی گوهر و افسون کردن شاهبد را به صورت پرنده از او پرسش کرد و او هم ماجرا را برای سلطان تعریف کرد سلطان از رفتار ناپسندیده ی گوهر ناخشنود شد و او را سرزنش کرد و گفت شاهزاده گوهر از رفتار ناپسندیده ی پدر خود سلطان کشور سمندل نسبت به شاه صالح بیخبر بوده و از روی جهالت از شخص بیگناهی چون شما بی انتقام جویی کرده است و رفتار شاهزاده خانوم به هیچ وجه قابل بخشیدن نخواهد بود در این هنگام سلطان رو به شاه کرد و پرسید حالا که در خدمت شما هستم چه کمکی از من ساخته است شاه پاسخ داد تا ام دارم خود را مرحون مهبانی های حضرت سلطان خواهم دانست و با کمال فروتنی از حضورتان خواهش دارم با یکی از کشتی هایتان مرا به کشور ایران برگردانند زیرا قیبت طولانی من سبب ناآرامی و بینزمی در کشور خواهد شد و ملک گلار مادرم از ناپدید شدن من سخت نگران است سلطان فورم یکی از بزرگترین کشتیها و ماهرترین ناخدایان را با تجهیزات کامل در اختیار شاه بعد گذاشت و آذوقه و آب کافی هم در آن پیش بینی کرد. و شاهبد با اجازه سلطان آزم سفر گردید. ده روز با هوای آرام کشتی در دریا پیش میرفت روز یازدهم باد شدیدی وزید و طوفانی برپا شد و کشتی را به سخه سنگی بزرگی کوبانید و آن را در هم شکست. بیشتر سرنشینان کشتی در دریا غرق شدند و پادشاه بعد توانست با استفاده از تخت پارهی از بقایای کشتی خود خودش را به ساحل رساند وقتی میخواست پا به ساحل گذارد ملاحظه که چهارپایان چهار پایان فرابانی در امتداد کرانه دریا ایستادهاند و مانع از ورود او به کرانه دریا هستند بالاخره با ایستادگی خود در برابر آنها توانست به نحوی خود را به ساحل رساند و در میان تخت سنگ های بزرگی که در آنجا یافت میشد خود را از دید چهار پایان پنهان کند و نفسی تازه کند ولباس های خود را زیر آفتاب خشک نماید شاه بعد از دور شهری را دید به سوی شهر رست شد ولی هنگام ورود به دروازه شهر باز با همان چارپایان روبرو شد که مانع ورود او بودند شاه های وسیع و متعددی در شهر مشاهده کرد اما به جای مردم همش میدید دید که چارپایان در خیابان ها رفت آمد می کنند. وقتی متوجه شد دکان های بسیار در هر طرف دیدی می شود فهمید که باید ای در اینجا زندگی کنند بعد به دکانی رسید که های مختلف در آن دکان دیده میشد و پیرمردی هم در آن نشسته بود شاه در نهایت فروتنی به پیرمرد سلام کرد پیرمرد سر خود را بلند کرد و جوان برازنده و خوشندامی را با لباس مرتب و رفتاری سنجیده دید از او پرسید از کجا میایی و چه شد که به این سرزمین آمدی شاه بعد در ضمن چند کلمه پاسخ او را داد و از پیرمرد پرسید چرا این همه چهار پایان درخت ها رفت آمد می‌کنند پیرمرد گفت بیا داخل دکان در سر فرصت برایت خواهم گفت ولی در این شهر باید خیلی با احتیاط باشی شاه بعد وارد دکان شد تعجب کرد که چرا پیرمرد او را به احتیاط کردن تشویق می‌کند به هر حال در کنار او نشست و غذای را که پیرمرد جلوی او گذاشته بود شروع به خوردن کرد پیرمرد در این زن به او گفت تو باید از خدا شاکر باشی که در طول راه برای رسیدن به شهر و همچنین در داخل شهر با خطری روبرو شده ای شاه پر تعجب می چرا پیرمرد این همه حشدار به او میدهد. پیرمرد گفت علت هشدار دادن من آن است که این شهر شهر جادو نام دارد و به جای شاه ملکی جوانی در اینجا حکومت می که بسیار زیبا و دل باست اما در عوض جادوگر توانا و است و جوانان را دوست دارد همه ایتا پایانی را که تا کنون دیده ای جوانانی بوده اند که ملکی آنها را به این صورت درآورده در. است ملکه معمولینی را در کنار در گماشته تا مردان تازه وارد را دستگیر کنند و نزد او ببرند او اول به آنها محبانی می کند. و مدتی به خشگذرانی به آنها میپردازد سپس بعد از چهل روز آنها را رو جادو میکند و به صورت حیوانات یا پرندگان در درمیآورد چهارپایانی که مانع ورود شما به ساحل دریا بودند و میخواستند مانع شما شوند تا به چنگ این ملكهیه خطرناک نیفتی شاهوجر با شنیدن سخنان پیر مرد نالهای کرد و گفت چه بدبختی بزرگی در انتظار من است چه مراحل دشواری را باید تحمل کنم؟ همش گرفتار تلسم و افسون هستم هنوز از یکی رهایی نیافته به تلسم جدیدی گرفتار میشوم آنگاه شاهبد شرح دلدادگی خود را به شاهزاده گوهر و رفتن به سرزمین سمندل و رفتار بیرحمانی رحمانی گوهر را نسبت به خود و تبدیل کردن او به صورت پرنده را به تفصیل برای پیرمرد تعریف کرد سپس شاهزاده بعد توضیح داد که ملکی نیکوکاری تلسم او را شکست و دوباره او را از شکل پرنده بودن به صورت اصلی او در آورده است. آن وقت پیرمرد به شاهبرد گفت با وجودی که ملکه این سرزمین مانوی خطرناکی است معهازاتون در پناه من هستی خطری تو را تهدید نخواهد کرد و آدم خوشقبالی هستی که با من روبرو شده اید. شاهبرد از پیرمرد سپاسگذاری کرد و در آستانه دکان نشست و با پیرمرد صحبت می کرد و مردمی که از آنجا میگذشتند و زیبایی و برازندگی او را میدیدند وارد دکان میشدند و به پیرمرد میگفتند چه غلام برازنده ای داری پیرمرد میگفت این جوان برادر زاده من است که برای کمک من به اینجا آمده است و او غلام زد خرید من نیست و من قدرت نگهداری غلام را ندارم مردم هم به پیرمرد میگفتند چگونه این جوان به این زیبارویی توانسته است از چنگ ملکه خود را مسرون نگه دارد؟ شما و برادرزاده تان باید احتیاط کنید که در معرض دید ملکه قرار نگیرید که با این جوان مانند سایر جوانان رفتار خواهد کرد. پیرمرد از خوشدار مردم در خود و برادرزاده سپاسگزاری کرد و گفت ملکه نسبت به من محبت دارد و در صورتی هم که از وجود برادرزاده من آگاه شود، همین که به فهمد این جوان برادر زاده من است از او چشپوشی خواهد کرد. پیرمرد از اینکه میدید می دید به خاطر این جوان این همه او را تحسین می کنند خوشنود شده بود و در دل خود از مصاحبت شاه جوان ایران بسیار شاد بود و او را مانند فرزند خود دوست داشت و این مهر پدران روز به روز بیشتر می مدت یک ماه بود که از آشنایی پادشاه ایران با این پیرمرد می و شاهبعد هر روز به دکان پیرمرد میآمد و در آنجا می نشست. در یکی از روزها ملکه جادوگر که نامش عشق بود با شکوه و جلال از آنجا میگذشت. پادشاه جوان از پیرمرد پرسید این سواران کیستند و این خانون کیست؟ پیرمرد پاسخ داد این همان ملکه است که درباره اش گفتم. سواران ملکه لباس ارغوانی پوشیده و شمشیر به دست در حرکت بودند. و تعدادشان یک هزار سبار بود به دنبال آنان نگهبانان داخل قصر ملکه بودند که بازهای یراق دوزی شده روی ها نشسته و با همان تعداد و همان نظم آنها را دنبال می کردند پشت سر آنها بانوان درباری بودند که ملکه در میان آنها سوار بر اسب پیش می مقابل دخان پیر مرد ملکه ایستاد و پرسید آن جوان زیبا کیست پیرمرد پاسخ داد این جوان برادرزاده من است ملکه گفت او را به من بده پیرمرد خودداری کرد و تقاضا کرد او را ندیده انگارند ملکه قول داد که آزاری به او نخواهد رساند و او را عزیز و گرامی در قصد خود نگه خواهد داشت پیرمرد تقاضا کرد در سفر بعدی ملکه از آنجا برادر را تسلیم ملکه خواهد کرد ملکه بوختواد سفر بعدی من فردا در همین ساعت خواهد بود ملکه قبل از رفتن به پیرمرد که نامش عبدالله بود گفت تقاضای مرا رد نکن و به خاطر دوستی بین ما صلاح در این است با درخواست من موافقت کنی عبدالله پاسخ داد برادرزاده من لیاقت ملکه را ندارد ملکه داد فردا در همین ساعت میآیم و مقاومت تو را نسبت به خود نوعی می میدانم ولی سوگند یاد میکنم که ای به برادر نخواهم زد. پیر از اینکه خود و شاهنشاه جوان ایران را ناگزیر از فرمانبرداری ملکه میدید بسیار ناخشنود بود. ناتاررا رضایت خود را اعلام کرد و ملکه با حرکت سربه نشانی رضایت آنجا را ترک گفت. وقتی ملکه و همراهان او رفتند عبدالله فیلمت نیک نهاد مشااه گفت، بیش از این قادر به ایستادگی در برابر ملکه نبودم زیرا میترسیدم مخالفت من سبب شود که با سحر و جادو چشم زخمی به هر دو ایمان می زند. گرچه ملکه سوگند یاد کرده که آزاری به شما نخواهد جسانید اما من به حرف این زن لعنتی اعتمادی ندارم اگر به من درو گفته باشد حسابم را با او تصفیه خواهم کرد شاه بچ در پاسخ عبدالله گفت من از این ملکی میترسم و شما خودت از بدنهادی او برایم داستان ها گفتی چگونه انتظار داری از او نترسم آن هم من که چندین بار گرفتار افسون جادوگران شده و سختیهای بسیار کشیدم هنوز رفتار ناپسند شاصاد بوهر را که مرا به شکل پرنده در آورده بود ازیاد از نبردم عبدالله گفت، با این همه قدرت جادوی ملکی عشق تا آن حدی است که من به او اجازه دهم. او این واقعیت را به خوبی آگاه هست و فقط به همین دلیل است که این همه به من احترام میگذارد. دیدی که تمام سواران و ملازمان بانوان درباری و حتی خود او هنگام عبور از مقابل دکان من چه احترامی به من نشان دادند. من نمیخواهم و نخواهم گذاشت که ملکه عشق کمترین آزاری به شما وارد کند به من اعتماد کن و وگرانچه را که میگویم دقیقا بدان عمل کنی از گزند ملکه در امان خواهی بود فردای آن روز ملکه در سر وعده حاضر شد و به عبدالله گفت پدر به وعده وفا کن و برادر زاده را با من بفرست که او را به قصر خود برم عبدالله گفت توجه فرمایید که خوهرزادم را مانند فرزندم دوست دارم و چون فرزند ندارم او فرزند من به شما میآید." آید ملکه گفت یک بار دیگر سوگند یاد می کنم که او در پناه من خواهد بود آنگاه ملکه جلو آمد و نقاب از چهره برداشت و به پیرمرد و شاه نگاه کرد شاه جوان ایران زیبایی او را در دل خود تحسین کرد و آنگاه یک کیسه که هزار سکه طلا در آن بود به عبدالله داد عبدالله از گرفتن پول خود دری کرد و ملکه اصرار می‌ورزید و سرانجام مجبور به قبول آن شد وران اسب زیبا و شاهانه ای که با زین و افزار طلا آراسته بودند برای شاه بدر آوردند او هم بر روی زین جای گرفت ملکه از نام او جویا شد وقتی کلمه بدر به گوشش رسید گفت بهتران بود که نام تو را به جای قرص کامل ماه خورشید می‌گذاشتند آنگاه شاه بدر در سمت چپ ملکه همگام با او اسب میراند. در طول راه مردم برای ش بعد دلسوزی می و میگفتند ملکه قربانی جدیدی را چکار کرده و با ناسزا و بدی از ملکه نامی برند و او را جادوگر میخواند. ملکه و همراهان به قصد سلطنتی رسیدند و ملکه از اسب پایین آمد و دست شاهنشاه جوان ایرانی را به دست خود گرفت و به داخل قصر رفت و اتاقها را یک و یک به او نشان داد که همه انباشته از اشیاء قیمتی و ساخته شده از طلای ناب بود آنگاه ملکه بعد را به ایوان قصر بود و از آنجا منظره منظرهٔ پرجلوهٔ باغ زیبای قصر را تماشا کردند بعد از آن صحبتهای متفرقه کردند و سپس بر سر سفره شام نشستند تمام بشغابها و ظرفها از طلای ناب بود شام را به پایان رساندند و بعد نوشیدن شراب آغاز شد و هر جامی را که ملکی می نوشید می هم به شاخبت تسلیم میکرد و به سلامتی یکدیگر نوشیدند سپس گروه رامشگران آمدند و به نواختن سازها و خواندن آواز پرداختند و این بعد تا پاسی از شب ادامه داشت همین که ملکی دید جوان زیبارو کاملا مست و است با اشاره سر همه نوازندگان را مرخص کردند و به خوابگاه رفتند و در آغوش یکیگر شب خوشی را به صبح رساندند. هنگام صبح شاهبد و ملکه هر دو به گرمابه رفتند و بعد از خروج از گرمابه حوله های اشرافی و لباس های شاهانه آوردند و شاهبد را لباس پوشاندند و ملکه هم لباس بسیار زیبا و خوشنگی بوشید و آرایش کرد و به نزد شاه بدر آمد و بقیه روز را سرگرم گفته بود و گردش و تفریح در باقی ملکه بودند چهل روز تمام از تاریخ پذیرایی ملکه از شاه بد و اینک زمان آن رسیده بود که ملکه جادوی را به کار برد و شاه را مانند سایر جوانان قبلی که دوران خودگذرانی با آنها به سرامده بود به صورت چهار پایی در آورد آنها هر در بستری خوابیده بودند و ملکه تصور می‌کرد که شاه بعد در خواب است او به آرامی از جای برخواست و از داخل صندوقچه یک بیرون آورد و از داخل آن گرد زرجنگی را به صورت خطی در کف تالا و بعد از آن همان خط تبدیل به رودخانه ای شد که سبب حیرت شاه بود که خود را به خواب زده بود و چشمی نگاه میکرد گردید اگرچه او ترسیده بود ولی هنوز تظاهر به خواب میکرد ملک عشق قدری از آب رودخانه را در زفی ریخ و از چند قوطی دیگر داروهایی آن و آن را خمیل کرد و به صورت شدینی کیک درآورد و بعد کلمات نامفهومی ادا کرد و رودخانه ناپدید شد آنگاه کیک را در گنجه گذاشت و بی سر و صدا به بستر برگشت و خوابید و شاهبت هم هیچونه اشارهی به این مطلب نکرد و خود را بی خبر نشان داد شاه بعد که به یران عبدالله بود و داشت که دستوراتی برای محافظت خود از شر افسون ملکه بگیرد به ملکه گفت درش برای امویش تنگ شده و اجازه خواست به دیدن او برود. ملکه اول موافقت نمی کرد ولی با اصرار شاه بعد رضایت داد. اما به شرط آنکه خیلی زود به قصد برگردد. ملکه دستور داد که اسبی را آماده ساختند و او هم پشت زینجا گرفت و به سوی دکان عبدالله روانه شد. عبدالله از دیدن شاه خوشحال شد. و هر دو یک دیگر را در آغوش کشیدند و از دیدار یک دیگر بسیار کردند و شاهبد آنچه را که رخ داده بود برای او بیان کرد و گفت تا اینجا ملکه جز محبت و دوستی و عشق چه دیگری به من نشان نداده است اما دیشب کارهایی از او دیدم که به او بد من شدم و جرگانی کیک پختن را تعریف کرد و گفت برای همین مطلب پیش شما آمدم که درباره‌ی شیرینی که, که او با شما صحبت کنم و بپرسم چه کاری باید انجام دهم. عبدالله لبخند زد و گفت: ما این اینجا دو را نمی‌خوریم. من به هیچ وجه به سخنان و با... به قول این زن اعتماد ندارم. هر کاری از دست او ساخته است و این از هنگام آن فرارسیده که سزای اعمال زشت او را بدهیم. من برای شما دونو کیک تقیی کردم. یک نورا باید به جای همان کیکی که ملکه به شما تعارف خواهد کرد بخورید و نوع دیگر کیکی است که باید به ملکه بخورانید. هنگامی که ملکه از شما تقاضای خوردن کیک خودش را میکند کیک را از او بگیر و با تداستی کیک مرا مر به جای آن بخور زیرا اگر کیک ملکه را بخورید تبدیل به چهارپا خواهی شد زمین در فرصت مناسب کیک دومی مرا مر به ملکه بده بخورد وقتی ملکه کیک را خورد فورا مشت آب بردار و به صورت ملکی بپاش و بگو به شکل حیوانی که دل خواهد هست درآید آن وقت با همان حیوان نزد من بیا تا قدمهای بعدی را به شما نشان دهم شاه از ابدالله تشکل کرد و به قصر بازگشت به محض بازگشت به قصر شاه بعد ملکه عشق را دید در باغ در انتظار اوست فورا جلو آمد و گفت بدر من از لحظه ای که تو را دیدم عاشقت شدم و طاقت دوریت را ندارم، اگر دیتر آمده بودی، نگران می شدم، و این مدت به نظرم به اندازه سالها دوری جلوه کرد. شاه بعد پاسخ داد، ای ملکه زیبا، من همین همین احساس را نسبت به شما دارم، با وجودی که امویم میخواست، مرا بیشتر نزد خود نگه دارد، طاقت نیاوردم، و با اینکه او مرا این همه دوست دارد، زود برگشتم، و از آن همه قضاها و شدینه های لذیذی که برایم تهیه کرد فقط من همین کیک را برای شما آوردم و به شما تقدیم می کنم آنگاه شاه از داخل دستمالی کیک مخصوص ملکه را در آورد و به او تعارف کرد و گفت قابل شما را ندارد ملکه یه بدنهاد پاسخ داد با کمال میل کیک شما را به خاطر خودت و امویت می خورم اما اول تو باید کیک مرا که در قیاب تو تهیه کرده هم بخورید. شاه در حالی که کیک را از دست ملکه می گرفت. با تردستی با کیک عبدالله هوش کرد و آنجا به جای کیک ملکه در دهان گذاشت. در همین لحظه ملکه مقداری آب به صورت شاه پاشید و گفت ای بدبخت به صورت اسب پرلنگ و نابینایی در وقتی ملکه دید افتونه او در این جوان کارگر نشد بسیار حیرت کرد و تا حدودی هم ترسید. بعد در حالی که گونه هایش از خجالت سرخ شده بود گفت بجه عزیزم من قصد آزار تو را نداشتم فقط میخواستم با تو را در برابر خود بدانم چیست من بعد از آن سوگندی که عدا کردم نمیتوانم خلاف آن رفتار کنم و اله آدم پست و فرومایهی به شما میروم شاه بعد بلا پاسخ داد ای ملک بزرگوار، بزرگ بار. شما قصدی جز تفریح نداشتید بلی من فقط قدری ترسیدم. به خصوص از این کلماتی که انسانها رو به شکل دیگری در میآورد ولی حال که من از که, که شما خورده میل دارم محبت کنید و از این که, که من هم...